جمهوری ایرانی چیزی جز همان تصویر سیمرغ نیست که همیشه در دل مردم زنده مانده است ادبیات ما انباشته از تصاویر سیمرغ و حما و سمندر و قغنس است که همه یک نامند فقط بایستی معانی آنها را شناخت و دانست که اینها همه نام یک خدا هستند بی ارزش ساختن داستان سیمور و به نام افسانه دروغ ساختن سیمون علتی داشته است. علتش این بوده است که برای حکومت ساسانی و موبدان زردشتی که شریک و مؤسس آن بودند این داستان تئوری حکومتی ملت ایران یا همون عوام که همون خرمدینان باشند بوده است این تئوری حکومت جمهوری بوده است کانها میکوبیدند و نابود میکردن سیمرغ یکی از نامهای ارتا خدای ایران بوده است این ارتا هنوز نامش در نامهای بسیاری از شهرها و رودها و اینها پایدار است مثل اردشیر، ارتا خشتره، اردبیل، اردکان، اردستان رودخانه عرس یا اردی بهشت اینها هنوز نامهای او هستند که باقی ماندن این ارتا، این خدا به شکل خوشه جانهای انسانها برای ایرانیان مجسم ساخته میشد شد خوشه بود و دانه های این خدا که خوشه بود تخم خدا بودن و گوهر خدایی داشتن این تخم ها در زمین تن هر انسانی افشانده می شدن. پس چی؟ پس ارتا تخم به بیخ و انصار اولیه هر انسانی بود ارتا اسمش هوچیتره و یعنی به چیترا یعنی تخم یعنی بذ یعنی تخمه به که امروز شده از حجیر این بیخ مون هر انسانی بود به عبارت دیگر بون یعنی فترت یعنی طبیعت سان چی بود خدا ارتا بود این از این تخمه از این تخم در انسان چهار نیرو یا چهار پر می روی است من یعنی فطرت یعنی طبیعت انسان همای چهار پر بوده است که مولوی همای تو تو همای چهارپری که خودت میتوانی بپری همای چهار پر بوده است زمیر انسان یا نیروهای مینوعی انسان در جانش سیمرغ بودند این یک اسم دیگر هم داشته است این طغ. اسمش خود بوده است. حالا صحبت میکنیم چرا خود نام این بیخوبون انسان بوده. که میتوانسان مستقیما هر انسانی با در اثر وجود این نیروها میتوانست مستقیما رابطه با خدا بگیرد و با به اصلش به یعنی نیاز به واسطه، نیاز به نبی و پیغمبر و رسول و مظهر و اینها نداشته است. خود خود مخفف یعنی صبوکشدی واجی هو توتک است که شده از خود خود هو توتا شده صد. هو یعنی به توتک نای شبانان است. یعنی هو توتک یعنی نای به یعنی سیمور. پس بنابراین تخم انسان قطول بود. حالا چرا من اینها را میگویم؟ برای خطرانی که اینها در داستان منطقه به خوبی آمده است. که چی؟ مردم که مرغان برای اینی که پیشوای در دوست و جودا باشده به حسب قرعه و قرعه انداختن هدهد را انتخاب میکنن. حالا خواهیم دید که این چه معنی ژرفی داشته پس بنابراین هدهود تخم سیمر بود است مشهور است که هدهود آب در زیر زمین را میبیند یعنی چی؟ یعنی در تاریکی میتواند چشمه آب زندگی را پیدا کنند چشمه آب زندگی در, در پرهنگ قدیم ایران معنای این بود که یعنی اصل زندگی یعنی حقیقت را پیدا کنند چشمه آب زندگی را پیدا کردن یعنی دنبال حقیقت گستند یعنی جستجوی حقیقت هدهد به عبارتی دیگر نماد جویندگی اصل زندگی است ارتا و رام اصل جویندگی هستند ببینید خدایان ایران اصل جویندگی هستند. نه روشنی بیکران یا معلومات پراگیر مطلق که همه چیز را دانند و اینها در قرآن یا در انجیل یا در تورات یا در گاتا نگاشته شدن اینها خدای ایران نبودند. خدای ایران اصل جویندگی در تاریکی ها بود این اصل جویندگی زمیر هر انسانش یعنی این هدهد تصویر رو در نظر باید بگیریم این است که در داستان اطار مرغان یعنی همه مردمان که در زمیرشان و جانهاشان همه های شارپر هستن مرغان چی را خود هدهد رو به قرعه رهبر خود میکنن به عبارت دیگر با قرآن چی رو اصل جستجو که در همه مرغان در همه انسان ها هست اصل جستجوی حقیقت رهبر همه ملت رهبر این آقا و اون آقا و این امام و اون پیشوا و این شاه و اون رئیس جمهور نیست نه رهبر اصل جستجوی زندگی در همه در هر یک از افراد ملت هست. این رهبر است و مرغان که مردمان باشند با رهبری این اصل جویندگی و پژوهش و آزمایش به جستجوی شاهشان میپردازند و در جستجو و پشوهش مییابند که خودشان شاه و پیشوا و رهبر خود هستند به عبارت دیگر شاهی و حکومت بر بنیاد جستجوی ملت با خردش و با اتکاب نیروی زاینده در خود مردم گذارده می شود نه بر کتابی مقدس نه بر آموزه علمی که در علم قوانین نهایی مقدس می بیند که کسی حدق دست زدن به آنها ندارد اصلا این مفهوم علم یک مفهوم بیهوده است که در ایران فقط بر از, در از خان روشن فکران بر از خان روشن فکران چیره شد این خرد جوینده ملت و این اطمینان به توانایی خودجوشی خود ملت است که با کار افتادن و بسید شدن بنیاد حکومت ملت بر ملت را میگذارد تیوری حکومت زردشتی این بود که حکومت یا شاه هنگامی مشروعیت دارد که آموزه زردشت را رواج بدهد مثل قانون اساسی مشروطه که در پیش بود که شاه باید رواج تشیع را رو بدهد و در جامعه تنفیذ کند و این تئوری زردشتی برای این پای بناچه حکام یا شاهان با از تبار گشتاس نخستین شاهی باشند که ترویج دین را کرد و درست این اندیشه تشیع در تشیع ولایت فقیه تشیع ولایت فقی تشعیع و وارث همین تئوریها یه موبدان زردشتی بودن. اکنون میتوان فهمید که چرا هنوز اینان هنوز یعنی هنوز در دوره ما اینان سیمرغ را افسانه و دروغ میدانن ما در تصویر سیمرغ اندیشه جمهوری ایران را داریم که در دل همه مردم زنده است. و اینکه مردم حقانیت واقعی را اون می که هوما تاج را بر سر کسی بگذارد هر کسی که بگذارد اوش که حق به حکومت دارد در این داستان ها می بینید هیچ کدام پیش نمی آید که یک وارث شاهنشاهی تاج را بر سر او می گذارد برکه بر سر یک مرد غریب و ناشناس می گذارد این چی هست؟ اینها همون اندیشه گم شده حقانیت به حکومت از سوی ملت است این ملت است که هماست که سیمرغ است تو سیمرغ در همه هست مجموعش یک خوش است هم سیمرغ پس حالا از طرف دیگر این نام شاه چه جور چرا به این شاهان داده شده است چرا میگویند شاهنامه نام سیمرغ شاه بوده است برای این الله تو شاهنامه گفته میشود اگر نه شاهنامه شاه نیست شاه نامه است نامه سی چرا از جمله گواه های خیلی پیش پا افتاده نام کرمان شاه این در اصل چی بود؟ است؟ گرماسین بوده است کرماسین سین که پسمند باشه یعنی سیمرغ سعی نام این واجه رو جاش چی جا جاش شاه کداشتم که, که گرماسین تبدیل شده است به کرمانشاه از این گواه ها زیاد است مردمان همه تخم های سیمر یعنی ارتا هستند و انسانی که تخم خداست سرپراز است تابع و مطیع و عبد کسی و قدرتی شود ببینید به کلی بر ضد تصویر انسان در قرآن است و در تاریخ ما، چون که در تاریخ ما بر ضد این فرهنگ همه حکومت کردن گوهر و طبیعت انسان بر ضد تابعیت و اطاعت و عبودیت و تسلیم شدن است نام دیگر ارطا که در هر کتاب لغتی می توانید پیدا کنید سرفراز بوده است یعنی سرکش یعنی هیچ خم نمی شود این تصویر انسان است که بنیاد جمهوری ایرانی است فطرت انسان سرفرازی است و انسان سرفراز انسان آزاد است. دموکراسی و جامعه مدنی و قانون و حقوق بشر بر پایه این تصویر از انسان است که پیدایش میابد. که و پایدار میماند. انسان است که قدرت و حق تأسیس قانون و حکومت و نظام را دارد. یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. پس چی پس مسئله بنیادی آن است که حقیقت را برای ما افسانه و دروغ ساختند. به آنچه حقیقت در ایران بوده است و هست نام افسانه و نام دروغ دادند تا ما با حقیقت خود دشمن شویم تا ما بر ضد حقیقت خود برخیشیم و خود ما، با جسارت و گستاخی ریشه حقیقت خود را به نام دروغ و افسانه و اسطوره از وجود خودمان بکنیم و با آن دشمن خونی بشویم ما با حقیقت خودمان دشمن شدیم ما اینها را دروغ و افسانه کردیم سیمرغ ما نه تنها از اینها افسانه شده است بلکه در جال ما ساخته هست. یعنی زن خدا یعنی خدای بد این همین سیمرغ است شده در دجال در اسلام سیمرغ ما نه تنها در قرآن ابلیس ساخته شده است ابلیس در قرآن همون خدای ایران سیمرغ است که تخمش در هر انسانی تبدیل به آتش سرفرازنده می شود سرفراز می شود اصلا ارتو سرفراز به زیر هیچ هیچگونه عبودیت و اطاعت و تابعیتی نمیره. خب این به درد تئوری اسلام که تسلیم شدن و اطاعت کردن هست نمیخورد. ما در اسلام خدای خود را که تخمش در درون هر ایرانی کاشته شده هر روز به نام عدو خود رجم و لعن و پایمال میکنیم. خوب است که خوب است بشناسیم که چرا این خدا در ما ابلیس شده است. چرا این خدا اصل دروغ شده است؟ چرا این خدا افسانه شده است؟ که حتی شاهنامه و شنازان ما در بررسی های بسیار علمی شد نیست آن را افسانه میخونه و بالاخره چرا این خدا همیشه ما را وستفاس به قیام به اسیان به سرپیچی میکنه و چرا حاضر است برای شناختن حقیقت لعنت ابدی را به خود بخرد؟ ببینید بینش حقیقت برایشو برای ارزش دارد و هیچگاه این تخم خدا این تخم سیمور که در هر ایرانی هست دست از سرپیچی در مقابل قدرت هایی که عبودیت و تسلیم و تابعیت میخواهند برنخواهد داشت